Yeah. در اوایل قرن پانزدهم فرانسه در خطر سقوط کامل به دست انگلستان قرار داشت پسر ارشد پادشاه فرانسه یا وارث تاج و تخت جوان ضعیفی بود که تاج شاهی بر سر نگذاشته بود ارتش فرانسه دچار بینظمی بود بخشی از نیروهای فرانسوی از مهاجمان انگلیسی و متحدانش بورگینیون ها فعالانه حمایت می کردند و همه تحت فرماندهی دوک بریتانیایی بتفورد بودند. فرانسه نیاز شدیدی به یک رهبر برجسته داشت که گرایش های ناهمسوی فرانسه را یک پارچه سازد و انگلیسی ها را از کشور بیرون براند. در این روزهای سردرگمی و ناامیدی، ژاندارک یک دختر دهخان فرانسوی مدعی شد، که صدای قدیسین را شنیده که او را فرا اند ارتش فرانسه را علیه انگلیسی ها رهبری کند ژاندارک نزد وارث پادشاهی فرانسه رفت تا او را متقاعد کند که قدیسین میکائیل، کاترین و مارگارت برای شکست انگلیسی ها او را برگزیدهاند. در آن زمان اروپا دستخوش هیستری جادوگری بود اما عقیده بر این بود که دوشیزه ها نمیتوانند جادوگر باشند از این رو جاندارک برای اینکه رهبران فرانسه را متقاعد کند که او یک موجود غیر طبیعی نیست، اجازه داد که پزشکی او را معاینه کند. جاندارک پس از پشت سرگذاشتن این معاینه، فرماندهان ارتش فرانسه را ترغیب کرد که در نبرد از او پیروی کنند. نتیجه یک رشته موفقیت‌های حیرت انگیز برای این نوجوان فاقد آموزش نظامی بود. او با مهارت نیروهای فرانسوی را در شمال فرانسه علیه انگلیسی ها فرماندهی کرد. در ظرف چند هفته، در لوار ناحیه‌ای در جنوب پاریس از دشمن پاکسازی شد. با عقبنشینی موقتی نیروهای دوک بتفورد، ژان توانست شهر اورلئان آن را که مدتها تحت تسلط انگلیسی ها بود آزاد کند. از آنجا راه به سوی شهر رنس که دارای کلیسای جامع بود، هموار بود و وارث پادشاهی فرانسه در آنجا با عنوان شاه شارل هفتم تاج گذاری کرد. شارل هفتم از تغییر انگلیسی ها اکراه داشت. اما جاندارک مصمم بود به جنگ ادامه دهد. در سال 1430 در جریان یک حمله به دست رهبر برگینیون اسیر شد که او را تحویل انگلیسی ها داد. جاندارک به دست پیتر کشون اسقف بووه افتاد که به آن جناح سیاسی وابسته بود که از انگلیسی ها حمایت میکرد. این مرد موزی و جاه طلب، فراتر از هر چیز دیگری میخواست پاپ شود از آن گذشته از پادشاه کشورش شارل هفتم که او را پادشاه ضعیفی قلمداد داد میکرد متنفر بود. کشان امیدوار بود که بتواند با حمایت از انگلیسیها، که هنوز بخشهایی از فرانسه را در اختیار داشتند به آرزوهایش جامعه عمل بپوشاند. در سال 1430 هنوز معلوم نبود که بشود انگلیسی ها را برای همیشه از فرانسه بیرون راند. دستگاه تفتیش عقاید فرانسه ژاندرک را به اتهام جادوگری محاکمه کرد. کشان بر این باور بود که اگر در موضوع سیاسی بسیار مهمی چون خلاص شدن از شر جاندارک به انگلیسی ها کمک کند، آنها به نوبه خود وامدار او خواهند بود. او انتظار داشت که در این صورت، هنگامی که کرسی پاپی خالی شود، کاردینال های انگلیسی به او رأی دهند و انتخاب او را به مقام پاپی امکان پذیر سازند. انگلیسی ها نیز از این همکاری خوشحال می شدند. چون فرصت می‌یافتند شکست‌های های گیج کننده خود را به دست یک دختر دیخان با محاکمه ژاندارک به اتهام جادوگری و بدعتگذاری توجیه کنند. بسیاری از اروپاییان حتی افراد تحصیل کرده عقیده داشتند که سحر و جادو و جادوگری مستلزم معامله با شیطان است که به خودی خود عملی کفرامیز است. چون این جرائمی در فرانسه در حوزه اختیارات دستگاه تفتیش عقاید قرار می گرفت. به دین ترتیب جاندارک خود را زندانی کوشون اسقف بووه و متهم به جادوگری و در نتیجه ارتکاب گناه بدعتگذاری یافت. شاه شارل هفتم که جاندارک این همه برایش تلاش کرده بود، دفاع از او را برای خود اسباب زحمت دید. جاندارک را با زنجیر به دادگاه بردند و کوشن و جن لومتر، نائب رئیس دستگاه تفتیش عقاید در سرتاسر سر فرانسه او را محاکمه کردند. محاکمه او نه ماه به طول انجامید و طی آن هرگونه تلاشی به عمل آمد تا او را به کلی بدنام سازند. در سند محکومیت او آمده بود. ژاندارک نامبرده نام برده با غصب مقام فرشتگان گفته و تأکید کرده که فرستاده خداست. حتی در اموری که آشکارا مستعد خشونت و ریختن خون انسان هاست. که مطلقا مغایر تقدس و از نظر همه دینداران هولناک و نفرت انگیز است. جاندارک در جریان محاکمه خود آزادانه تصدیق کرد که قدیسان را در رویا دیده که به او گفتهاند به بیرون راندن انگلیسی ها از فرانسه کمک کند. در قرن پانزدهم کلیسا این نظر را که اشباه به طریقی که ژان توصیف کرده بود به دیدن اشخاص می پذیرفت. از این رو مفتشان او دوچار مخمسه اعتقادی شدیدی شدند. میبایس تصمیم میگرفتند که آیا رویاهای ژان صادق بوده یا اوهام شیطانی. اسخف بووه دادگاه تفتیش عقاید را مجبور کرد یک تصمیم سیاسی بگیرد. در پرونده ژان دارک ملاحظات سیاسی یعنی تمایل بووه به راضی کردن انگلیسی ها و حامیان بورگاندیشان، بر منطق اعتقادی فائق آمد. او را در جادوگری و بدعتگذاری مقصر شناختند و تحویل مجریان محلی قانون دادند و در سال 1431 در میدان عمومی شهر روان در چوبه مرگ سوزاندند. بر روی سرش یک تاج کاغذی قرار داده بودند که روی آن این کلمات نوشته شده بود. بدعتگذار، سر موزه، مرتد، بطپرست، یک سرباز انگلیسی که شاهد سوزاندن او بود، اظهار داشت: تباه شدیم، یک قدیس را سوزاندیم." روشن است که خود دستگاه تفتیش عقاید از محاکمه و محکومیت ژان احساس رضایت کامل نمی کرد. در سال 1456، تنها 25 سال پس از مرگ دلخراش ژان پاپ کالیکتوس سوم حکمی را که علیه او صادر شده بود، باطل اعلام کرد. پاپ بندیکتوس پانزدهم در شانزده مه سال 1920 جاندارک را قدیس اعلام کرد. شکار جادوگران. جاندارک تنها یکی از شاید حدود یک میلیون نفری و عمدتا زنان بود که قربانی جنون شکار جادوگران در قرون وسطا شدند. این پدیده اجتماعی در اواخر قرن چهاردهم آغاز شد. و برای حدود سیصد سال فکر و خیال اروپاییان را تسخیر کرد. طی این دوره قحطی و بلایایی نظیر تا اون سیاه سبب از دست رفتن جان میلیونها نفر شد. جنگهای داخلی و دوره های درگیری مذهبی نیز وجود داشت. چنان که تاریخدان کارل استفنسون شرح میدهد، به لحاظ روانشناختی افزایش باور به جادوگری را میتوان نتیجه افسایش بدبختی و نارضایتی در آن سالها دانست. دستگاه تفتیش عقاید مسئول این نابسامانی‌های گسترده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نبود. حتی در ابتدا مسئول شکار دهشتناک جادوگران که طی آن صدها هزار زن باختند نیز نبود. اما سوزاندن ژاندارک به عنوان یک ساحره دستگاه تفتیش عقاید را در انظار عموم با اعتقاد به وجود جادوگران مرتبط ساخت و این ارتباط طی قرن ها ادامه یافت. کلیسا به بررسی اهمیت جادوگری میپردازد. طی قرن چهاردهم کلیسا مجموعه گسترده ای از اطلاعات در مورد رفتارهای مرتبط با جادوگری گرد آورد. داستانهای مربوط به اعمال شرورانهی که جادوگران انجام می‌دادند، پروازهای شبانه آنها بر روی چوبهای جادو برای ملاقات با شیطان در اجتماعاتی که ثبت جادوگران نامیده می‌شد و قرار و مدارهایی که در این گرده همایی با شیطان می بسیاری از قفسه‌های های کتاب های کلیسا را پر کرد. در همان زمان، یک رشته بحث های مهم کلامی، در میان ارباب کلیسا بر روی این فعالیت های گزارش شده، متمرکز شد. همه این تحولات منجر به این شد که پاپ یوانس 22 بین فکر جادوگری و بدعتگزاری ارتباط برقرار کند. از سال 1375 تا سال 1435 دورهی که طی آن جاندارک اعدام شد، تعداد محاکمات به ویژه تعداد محاکماتی که در آنها اشخاص به ارتباط با شیطان متهم میشدند افزایش یافت. تاریختان هوترو روپه با کمی شگفتی می نویسد که این جنون درست همزمان با ظهور اندیشه مدرن علمی گسترش یافت. صرفن نگاهی به هر گزارش خبرگان معتبر آن زمان وضعیت حشداردهنده امور را آشکار می سازد. هزاران پیرزن و نه تنها پیرزن، به اعتراف خودشان با شیطان سر و داشتند. شیطانی که اینک به صورت فرمانروای بزرگ روحانی، سلطان تاریکی، ظاهر شده و در پی آن بود که امپراتوری از دست رفته خود را باز پس گیرد. هر شب این بانوان بیخرد با روغن شیطان که از پیهه نوزادان به قتل رسیده درست شده بود، خود را چرب می کردند و پس از روغنمالی از میان روزنها و سوراخهای کلید به نرمی عبور میکردند و از دودکشها بالا میرفتند سوار بر دسته های جارو یا میله ها یا بزهای پرنده میشدند و به پرواز در می‌آمدند و پس از یک سفر هوایی طولانی و به طرز وصف ناپذیری خسته کننده به یک میادگاه اهریمنی ثبت جادوگران می رسیدند. در هر کشوری صدها مورد از چنین هایی وجود داشت که پرشمارتر و شلوختر از مسابقات عصب دوانی یا بازارهای مکاره بود. فتوای سال 1484 پاپ در مورد جادوگران. در پایان قرن 15، هم، کلیسا وجود جادوگری را به عنوان عاملی مهم در زندگی اروپاییان به رسمیت شناخت. پاپ اینو کنتیوس هشتم در سال 1484 فتوای مشهور خود را درباره جادوگران صادر کرد که در آن به تفصیل مشکلاتی را که جادوگران در سرزمین های جرمنی ایجاد کرده بودند شرح داد. بسیاری اشخاص از هر دو جنس بی به رستگاری خود و با دست کشیدن از ایمان کاتولیک خود را به شیطان زن و مرد می و با سحر و جادو، افسون و شعبدگری خود و با دیگر موهومات و قیبگوی خلافها، جرمها و خطاها، فرزندان زنان، بچه های حیوانات، محصولات زمین میوه های درختان انگور و میوه های سایر درختان را نابود می کنند یا سبب نابودی آنها میشوند. آنها مردان، زنان، رمه ها، گله ها و حیوانات را به درد و عذاب هولناک چه درونی و چه بیرونی مبتلا می کنند و شکنجه می دهند و مردان را از پدر شدن و زنان را از باردار شدن باز میدارند و همه را از وسال زناشویی محروم می سازند. آنها با زبان توهینآمیز ایمانی را که در غسل تعمید مقدس دریافت کرده اند انکار می کنند. آنها به تحریک دشمن بشریت شیطان از ارتکاب و دست یازیدن به بسیاری خلافها، و جرائم نفرت انگیز دیگر به زیان روح خود و به بهای توهین به محضر الهی و اهانت به توده های مردم و ارائه الگویی زیانبار و خطرناک هراسی به دل راه نمیدهند دهند. کلیسا از دستگاه تفتیش عقاید برای رسیدگی به گزارش های فضاینده در مورد جادوگری استفاده کرد و از روش ها و تکنیک های این دستگاه برای گرفتن اطلاعات از مزنونان بهره برد مثلا پاپ اینو کنتیوس هشتم دو مامور تفتیش عقاید دومینیکی به نام های هنری کرامر و جیکوب اسپرنجر را مامور رسیدگی به وضعیت جادوگران در سرزمینهای های ژرمنی کرد آنها در سال 1486 کتابی به نام چکش جادوگران نوشتند که کتاب راهنمای ماموران تفتیش عقاید برای برخورد با جادوگری شد و همان اهمیتی را پیدا کرد که کتاب‌های راهنمای تفتیش عقاید نیکولاس ایمریچ یافته بود پیدایش آن یک بار و برای همیشه به اثبات رساند که دستگاه تفتیش عقاید علیه جادوگران است و اقداماتش از تایید رسمی پاپ برخوردار کلیسای کاتولیک به استفاده از دادگاه های تفتیش عقاید برای تعقیب جادوگران تا قرن هفدهم ادامه داد. اما لازم به یادآوری است که شکار جادوگران در کشورهای پروتستان با بیرحمی کمتری صورت نگرفت. هم مارتین لوتر و هم اصلاحگر فرانسوی ژان کالون با همان قاطعیت مأموران تفتیش عقاید قرن پانزدهم به سبت و پروازهای شبانه باور داشتند. با آنکه روحانیون در اداره دستگاه تفتیش عقاید به طور فضاینده ای از معیارهای والایی که پاپ اینو سوم بنیاد نهاده بود، دست کشیدن، کسانی کشیدن کلیسای کاتولیک را از درون اصلاح کنند و از آن در برابر دشمنانش محافظت نمایند. اما بسیاری از این اصلاحگران در دسرآفرین تلغیر شدند و صلاح دیدشان نادیده گرفته شد. از این رو آنها نیز قربانی دستگاه تفتیش عقاید شدند که نمونه آن ماجرای معروف و بدفرجام یان هاوس بود.